اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال: ألم أقول لك إنك لن تستطيع مع صبرا گفت آیا به تو نگفتم که هرگز نمیتوانی با من صبر کنی؟ قال ان سالتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا موسی گفت بعد از این اگر از تو درباره چیزی سوال کردم دیگر با من همراهی نکن به از جانب من معذور خواهی بود فانطلقا حتی اذا اتیا اهل قریت نستطع ما اهلها فابو استطع ما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا پس به راه خود ادامه دادند تا به أهل قریهای رسیدند از آنان خواستند که به ایشان غذا دهند ولی آنان از مهمان نمودن آنان خودداری کردند آنگاه در آنجا دیواری یافتند که می‌خواست فروریزد، فروری زد. پس خزر آن را راست و اوستوار کرد موسا گفت اگر می می‌توانستی در مقابل این کار مزدی بگیری قال هذا فراق بینی و سأنبئك ما لم تستطع صبرا خضر گفت اینک زمان جدایی من و تو فرا رسیده به زودی تو را از راز و حکمت آنچه که نتوانستی در برابر آن صبر کنی آگاه خواهم ساخت اما السفینه فکانت لمساكين يعملون في البحر فاردت ان اعیبها فاردت ان اعیبها و کان كل سفینه غصبه اما کشتی از آن بینوایانی بود که در دریا کار می کردند. پس من خواستم آن را مَعیوب کنم چرا که پشت سر آنها پادشاهی ستمگر بود که هر کشتی سالمی را به زور میگرفت. و اما غلام فکان ابواه مؤمنین فخشینا ان ارهقهما طغیان و کفر فاما نوجوان پدر و مادرش هر دو با ایمان بودند پس بیم داشتیم که آنان را به سرکشی و کفر بادارد ان ربهما و رحمه. از این رو خواستیم که پروردگارشان فرزند در و پرمحبتتری به جای او به آن دو عطا فرماید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 وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا, ويستخرجا كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا و اما دیوار از آن دو نوجوان یتیم در آن شهر بود و زیر آن گنجی متعلق به آن دو وجود داشت و پدرشان مردی صالح بود پس پروردگارت خواست که آنان به حد بلوغ برسند و گنج خود را بیرون آورند این رحمتی از پروردگارت بود این کارها را من خود انجام ندادم این بود راز و حکمت کارهایی که نتوانستی در برابر آنها صبر کنی و که عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منه ذكرا. به ای پیامبر از تو در باری می‌پرسند، میپرسند بگو به زودی چیزی از سرگذشت او برای شما خواهم خواند. له في الأرض من كل یقینا <سؤال> ما به او در زمین قدرت و حکومت دادیم و اسباب هر چیز را در اختیارش گذاشتیم <سؤال> پس او از این اسباب پیروی و استفاده کرد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 تا آنکه به قروب گاه آفتاب رسید چونین به نظرش رسید که خورشید در چشمهای ای گلآلود و سیاه غروب میکند و در آنجا مردمی را یافت گفتیم ای قرنین، یا آنان را مجازات میکنی و یا روش خوبی در باری آنها انتخاب مینمایی قال امما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا ذوالقرنین گفت اما کسی که ستم کرده است مجازات خواهیم کرد سپس به سوی پروردگارش بازگردانده می شود آنگاه او را مجازات سختی خواهد کرد و اما من آمن و عمل صالحا فله جزاء الحسنا و سنقول له من امرنا یسرا و اما کسی که ایمان آورد و کار شایست انجام داد پس در آخرت پاداشی نیکو دارد و ما دستور آسانی به او خواهیم داد ثم اتبع سببا. سپس از اسبابی که در اختیارش بود استفاده کرد حتی اذا بلغ مطالع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا تا آنکه به جایگاه برآمدن آفتاب رسید در آنجا دید که آفتاب بر مردمانی طلوع می کند که در برابر تابش آفتاب برایشان پوششی قرار نداده بودیمکذلی کهانقد <تصفح> این چونین بود کار زللقرنین و به راستی ما از آنچه در اختیار داشت و انجام میداد کاملا آگاه بودیم. ثم اتبع سببا سپس از وسایل و اسباب استفاده کرد حتی إذا بلغ بین السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا و به سفر ادامه داد تا به میان دو کوه رسید و در کنار آن دو کوه مردمی را یافت که هیچ سخن ایران نمیفهمیدند قالوا يا ذالقرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا آنان به او گفتند اي ذوالقرنين یا جوچ و معجوج در این سرزمین فساد می کنند پس آیا هزینه‌ای برای تو قرار دهیم که میان ما و آنها سدی بسازی؟ قال ما مکنی فی ربه خیر، فاعینونی بقوه، اجعل بین کم و بین هم قرن این گفت. آنچه پروردگارم در اختیار من قرار داده بهتر است پس مرا با نیرویاری کنید تا میان شما و آنها صد محکمی بسازم آتونی زبر الحدید حتی اذا سوا بین الصدفین قال فخو حتی اذا جعله نارا قال آتونی افرغ عليه قطرا. قطعات بزرگ آهن برایم بیاورید و روی هم بچینید تا وقتی که کاملا میان دکوخ برابر کرد و پوشانید گفت در اطراف آن آتش بیافروزید و در آن بدمید آنها دمیدند تا وقتی قطعات آهن را سرخ و گداخته کرد گفت اکنون مثل زوب شده برایم بیاورید تا بر روی آن بریزم ان و له سرانجام صد محکمی ساخت پس آنها اصلا نتوانستند از آن بالا روند و نتوانستند سوراخ و نکبی در آن ایجاد کنند. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعده ربي جعله دكّ و كان ربي حقا. آنگاه گفت این از رحمت پروردگار من است اما هنگامی که وعده پروردگارم فرارسد آن را در هم می و وعده پروردگارم حق است و ترکنا بعضهم یوم اذی یموجو فی بعض و نفخ فی الصور فجمعناهم جمعا و در آن روز که جهان پایان می ما آنها را چنان رها می کنیم که در هم موج می زنند و در شیپور دمیده می شود سپس ما همه را در یک جا جعب می کنیم و, عرضا. و در آن روز جهنم را بر کافران عرض می داریم. الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكر وكانوا لا يستطيعون سماع ان کسانی که چشم از یاد من در پرده قفلت بود و توان شنیدن حق را نداشتند اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي اَوْلِيَاءِ اِنَّا اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلَا آیا کسانی که کافر شدند؟ گمان می که بندگان مرا به جای من اولیای خود بگیرند بی گمان ما جهنم را برای پذیرایی کافران آماده کرده این قل هل ای پیامبر بگو آیا شما را به زیان کار ترین مردم در کارها خبر دهیم الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا كساني که تلاش و کوشششان در زندگی دنیا تباه و زایع شده و با این حال گمان میکنند که کار نیک انجام میدهند اولائی که الذین کفروا بی آیات ربهم و فحبطت أعمالهم, فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم يوم القیامت وزنا <تصفيق> <ديقون> آنها کسانی هستند که به آیات پروردگارشان و لقای او در جهان آخرت کافر شدند و در نتیجه اعمالشان تباه و نابود شد سپس در روز قیامت برای آنها وزنی بر نخواهیم کرد ذالک جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا واتخذو و ورسولي هزوا آری اینگونه است سزای ایشان دوزخ است به خاطر آنکه کافر شدند و آیات من بپیام برانم مسخری و پیامبرانم را مسخره گرفتند این الذين و وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا بیگمان کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام دادند باغ‌های بر این محل پذیرایی ای آنان خواهد بود خالدین فیها لا یبغون عنها حیو ولا جاودانی در آن خواهند ماند و هر کس تقاضای نقل مکان از آنجا نمی‌کنند قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي البحر قبل, أن كلمات, ربي البحر قبل أن كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا أي پیامبر بگو اگر دریا برای نگارش کلمات پروردگارم جوهر شود قطعا دریا به پایان می رسد، پیش از آنکه کلمات پروردگارم پایان یابد هر چند همانند آن دریا به کمک آن بیاوریم قل انا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا ای پیام بر بگو من فقط بشری هستم مثل شما به من وحی می شود که تنها معبودتان معبود یگانه است پس هر که به لقای پروردگارش امید دارد باید کار شایسته انجام دهد و هیچ کس را در ابادت پروردگار از شریک نسازد. بسم الله الرحمن الرحیم. ها، ها، یا، این، ساد ذکر رحمت ربی عبده زکریا. این بیان رحمت پروردگارت نسبت به بنده اش زکریه است اذ نادا ربه نداء چون پروردگارش را به ندایی پنهان به دعا خواند قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقييا گفت پروردگارا به راستی که استخانم سوس شده و شعله پیری سرم را فرا گرفته و من هرگز در دعای تو ای گارم محروم نبوده و خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی عاقرا فهبلی من لدن کولیه و به راستی که من بعد از مرگ خودم از وارسانم بیمناکم و همسرم نازا و عقیم است پس از نزد خیش وارثی به من عطا فرما. یریثونی و يرث من عقوب یعقوب وجعله ربی رضیا. که وارث من و نیز وارث آل یعقوب باشد و پروردگارا او را پسندیده قرار ده. یا لم نجعل من قبل خداوند فرمود ای زکریا ما تو را به پسری بشارت می‌دهیم که نامش یحییاست که پیش از این هم برای او قرار نداده ایم قال ان غلام وكانت عاقرا وقد بلغت من الكبر گفت پروردگارا چگونه برای من پسری خواهد بود در حالی که همسرم نازاست و من نیز از شدت پیری به ناتوانی ام قال كذلك قال ربك هو وقد خلقتك من قبل ولم تكو شيئا. فرشته گفت این گونه است پروردگارت فرموده است این بر من آسان است و به راستی پیش از این تو را آفریدم در حالی که چیزی نبودی قال رب اجعلني آیه قَالَ آیَتُ كَأَلَّا تُكَلِّمَنَّاسَ خَلَاثَ لَيَالٍ سَوِیَا زکریا گفت پروردگارا برای من نشانهای قرار قرارده فرمود نشانی تو این است که سه شبان روز در حالی که تندرست و سالمی نتوانی با مردم سخن بگویی فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا پس او از محراب بر قومش بیرون آمد آنگاه به آنها اشاره کرد که صبح و شام خدا را تسبیح گویید. یا الكتاب بقوة خداوند فرمود ای یحیی کتاب تورات را با قوت و جدیت بگیر و در کودکی به او دانش و نبوت دادیم و, زکاتا و, و نیز به او شفقت و پاکیزگی از جانب خود عطا کردین و او پرهیزگار بود و برن بی والدیه و لم یکن جبارا عصیه. و او نسبت به پدر و مادرش نیکوکار بود و سرکش و نافرمان نبود و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث و سلام بر باد روزی که متولد شد و روزی که میمیرد و روزی که زنده برانگیخته می میشود و اذكر في فی الكتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیه و در این کتاب مریم را یاد کن هنگامی که از خانواد اش کنار گرفت و در ناحیه شرقی مستقر شد فَاتَّخَذَتْ من دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا روحنا فَأَرْسَلْنَا إليها روحنا پس میان خود و آنها پرده ای کشید آنگاه ما روح خود را به سوی او فرستادیم پس به هیئت انسانی کامل بر او ظاهر شد قالت انی اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقیه. مریم گفت همانا من از شر تو به خدای رحمان پناه میبرم اگر تو پرهیزگار هستی قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما فرشته گفت یقینا من فرستاده ی پروردگار تو هستم تا پسر پاکیز ای به تو ببخشم قالت ان... مريم گفت چگونه ممکن است مرا پسری باشد در حالی که تا کنون انسانی با من تماس نداشته است و هرگز زن بدکاری هم نبودم. قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَى أَنْ يَهِنُوا وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا فرشته گفت این گونه است پروردگارت فرموده است این کار بر من آسان است و او را برای مردم نشانهای قرار میدهیم و نیز رحمتی از سوی ماست ما و این امریست انجام یافته فحملته قصیا پس مریم به او باردار شد آنگاه با او به جایی دور دستی رفت و از مردم کنار گرفت فَأَجَاءَ هَلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَ نِيمِتْ قَالَتْ يَا لَيْتَ نِيمِتْ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ پس درد زایمان او را به سوی تنی درخت خرمایی کشاند گفت ای کاش پیش از این مرده بودم و به کلی از یادها رفته و فراموش شده بودم فناداها من تحتها الا قد جعل ربك ناگهان از سمت پایینش او را صدا زد که قمگین مباش به راستی پروردگارت زیر پای تو چشم ای جاری قرار داده است وہ بجذع رطبا جنیا و این تنیه درخت خرما را به طرف خود تکان بده که رطبه تازه بر تو فرو میریزد فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيْنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَقُولِ اِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْ پس از آن بخور و از آب چشم بنوش و دیدگان را روشندار پس اگر کسی از انسانها را دیدی با اشاره بگو همانا من برای خدای رحمان روز نظر کرده هم. لذا امروز با هیچ بشری سخن نمیگویم فاتت به قومها تحمل قالوا یا مریم لقد جئت شيئا فریا پس مریم در حالی که او را برداشته بود نزد قومش آمد گفتند ای مریم به راستی کاری زشت انجام دادی یا اخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغیا ای خواهر هارون پدرت مرد بدی نبود و مادرت نیز زن بدكاریای نبود فأشارت قالوا كيف نكلم من كان في المهدي پس فسمريم به او اشاره کرد گفتند چگونه با کسی که کودکی است در گهوار سخن بگوییم قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا عيسو گفت من بنده خدا هستم به من کتاب داده و مرا پیام برقرار داده است و جعلنی مبارکا اینما کنتو و اوصانی بالصلاة ما دمت حیا. و مرا هر جا که باشم پربرکت و فرخنده قرار داده و تا تازنده امرا به نماز و زکات سفارش کرده است و براً ولم و لم یجعلنی و مرا نسبت به مادرم نیکوکار قرار داده و مرا سرکش و بدبخت قرار نداده است والسلام السلام علیه یوم ولدت و یوم اموت و ابعث حيا. و سلام بر من روزی که متولد شدم و روزی که میمیرم و روزی که زنده برانگیخته شوموللی کهسب قول الحق این است حکایت ایسا پسر مریم گفتار راستی که در آن تردید و اختلاف میکنند. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول لهم كون هرگز شایسته خدا نیست که فرزندی برگیرد او منزه است هرگاه کاری را فرمان دهد و بخواهد فقط به آن میگوید موجود شو پس بیدرنگ موجود می شود و این الله ربی و هذا صراط مستقیم. و عیسی به قومش گفت یقینا الله پروردگار من و پروردگار شماست اس او را پرستش کنید که راه راست این است وقتلف الأحزاب من بینهم فویل للذین کفر فویل للذین کفروا من مشهد یوم عظیم آنگاه گروهای یهود و نصارا در میان خود اختلاف کردند حسوی بر کسانی که کافر شدند از حضور در آن روز بزرگ اسمع بهم و ابصر یوم یاتوننا لکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین آن روزی که نزد ما میآیند چه خوب شنوا و چه خوب بینا هستند لي امروز در گمراهی آشکارند و انذرهم يوم الحسرت اذ قضی الامر وهم في غفله وهم لا يؤمنون به ای پیامبر آنها را از روز حسرت بترسان آنگاه که کار پایان پذیرد و آنها همچنان در غفلتند و ایمان نمی آورند اینا نحن نرث الارض ومن عليها و يرجعون همان ما ایم که زمین و کسانی را که بر آن هستند به ارث میبریم و همگی به سوی ما بازگردانده میشوند و اذكر في الكتاب ابراهيم اننه كان صديقا نبيا به ای پیامبر در این کتاب ابراهیم را یاد کن بی گمان او پیامبری راستگو بود اذ قال لی ابیه یا ابت لی متعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنك کشیئه هنگامی که به پدرش گفت ای پدر جان چرا چیزی را پرستش می کنی که نمی و نمی بیند و نه هیچ نیازی از تو برآورده میسازد؟ یا عبت اینی قد جاءنی من العلم ما لم یأتی که فتبعنی فتبعنی صراطا سویه ای پدر جان یقینا از جانب خدا دانشی برای من آمده که برای تو نیامده است پس از من پیروی کن تا تو را به راه راست هدایت کنم. یا ابد لا تعبد الشیطان. این الشیطان كان للرحمن عصیا. ای پدر جان، شیطان را پرستش نکن، زیرا که شیطان نسبت به خداوند رحمان نافرمان بود. یا ابتی إنی أخاف أن یمسك عذاب من الرحمن فتكون للشیطان ولیا ای جان، من از این می ترسم كه از سوی خداوند رحمان عذابی به تو برسد آنگاه از دوستان شیطان باشی قال أراغب أنت عن آلهتی يا لا لئن لم تنتهی لأرجمنك واهجرنی پدرش گفت ای ابراهیم آیا تو از معبودهای من روی گردانی اگر باز نیایی قطعا تو را سنگسار میکنم و برای مدت طولانی از من دور شو. قال سلام علیکس استغفر لك ربی اینهو كان بی ابراهیم گفت سلام بر تو به زودی از پربردگارم برای تو طلب آمرزش خواهم کرد بیگمان او نسبت به من مهربان است و اعتزی لکم و ما تدعون من دون الله و ربی عساء لا أكون بی ربي ربی شقیه و از شما و آنچه به جای خدا میخوانید کنار گیری می و پروردگارم را میخوانم. امیده است که در خاندن پروردگارم محروم نباشم فلم اعتز لهم و ما یعبدون من دون الله و له اصحاق و یعقوب جعلنا نبیه پس چون از آنها و آنچه به جای خدا می پرستیدند کنار گیری کرد، اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و هر یک از آنان را پیام برگردانیدیم. و لهم من رحمتنا و لهم لسان صدق عليا و از رحمت خود به آنها عطا کردیم. و برایشان در میان امت ها ذکر خیر بلند آوازهای قرار دادیم و اذکر فی الکتاب موسا اینهو کان مخلصا وكان رسولا نبیه و ای پیامبر در این کتاب موسا را یاد کن به راستی او مخلص بود و فرستاد ای پیامبر بود و من جانب الطور الایمن وقربناه قربناه نجیه و ما او را از طرف راست کوه تور ندا دادیم و رازگویان او را به خود نزدیک ساختیم و وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبیه. و ما از رحمت خود برادرش هارون را که پیام بر بود به او عطا کردیم و فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسول النبیه و در این کتاب اسماعیل را یاد کن بیگمان او راست بعده و فرستاد ای پیام بر بود وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا و او هموار خانواد را به نماز و زکات فرمان میداد و نزد پروردگارش پسندیده بود و اذكر في الكتاب ادري كان نبيا. و در این کتاب ادریس را یاد کن بیشک او پیام بری راستگو بود و رفعناه مکانا علیا و ما او را به جایگاهی بلند فرابردیم بردیم الذین انعم الله علیهم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 اذا تُتْلَى عليهم آیَاتُ الرحمن خروا سجدا <تصفيق> اینان کسانی از پیام بران بودند که خداوند برانان انعام کرده بود از فرزندان آدم و از کسانی که با نوح بر کشتی سوار کردیم و از فرزندان ابراهیم و اسرائیل از کسانی که آنها را هدایت کردیم و برگزیدیم چون آیات خداوند رحمان برانها تلاوت می سجده کنن و گریان به خاک می فخالف فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف یلقون غیات آنگاه پس از آنان فرزندان ناخلفانی جانشین شدند که نماز را زایع و ترک کردند و از شهوات پیروی کردند پس به زودی کیفر گمراهی خود را خواهند یافت من آن و مگر آنکه توبه کرد و ایمان آورد، و کار شایسته انجام داد پس اینان به بهشت داخل میشوند و بر آنان هیچ ستمی نخواهد شد جنات عدن اللتی وعد الرحمن عباده بالغیب انه کان وعده متیا حق است که خداوند رحمان به غیب بندگانش را به آن وعده داده است مسلما بعد او فرا خواهد رسید لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم فيها بكره وعشيا در آنجا سخن بیهوده نمی شنوند سلام و بر آنها هر صبح و شام روزیشان در بهشت آماده است <تصفيق> این همان بهشتی است که از میان بندگان من به آن کسی که در دنیا پرهیزگار بوده به می میدهیم وما نتنزل الا بامر ربك له ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلك وما كان ربك نسیا و جبرئیل به پیام ارض كرد ما فرشتگان جز به فرمان پروردگارد نازل نمیشویم آگاهی از آنچه نزد روی ما و آنچه پشت سر ما و آنچه میانی این دوست همه از آن اوست و پروردگارت هرگز فراموشکار نیست رب السماوات والارض وما بينهما بینهما فعبده و لعبادته هل تعلم له سمیا همان پروردگار آسمانها و زمین و آنچه میان آن دو است پس او را پرستش کن و بر عبادتش شکی با باش آیا همنامی برای او می شناسی و الانسان اذا ما لسوف اخرج حیا و انسان کافر میگوید آیا زمانی که بمیرم زنده از گور بیرون آورده خواهم شد اولا یذکر الانسان اننا خلقناه من قبل ولم یکون شیئا آیا انسان به یاد نمی آورد که ما پیش از این او را آفریدیم در حالی که هیچ چیز نبود لنحشرنهم ثم لنحضرنهم ثم لنحضرنهم حول جهنم پس سوگند به پروردگارد که محققا همه آنها را با شیاطین محشور خواهیم کرد. سپس همه آنها را به زانو در آمده پیرامون جهنم حاضر می سازیم ثُمَّلَنَنْزِعَنَّ مِنْ کُلِّ شِیَعَتٍ اَيُّهُمْ اَشَدُ عَلَى الْرَّحْمَنِ عِتِيَهُ آنگاه از هر گروه کسانی را که در برابر فرمان خداوند رحمان از همه سرکشتر اپرجور اثر بوده اند جدا خواهیم کرد ثم لا نحن اعلم بالذین هم اولا بها سپس ما به حال کسانی که برای سوختن در آتش جهنم سزاوار ترند داناترین و ان منکم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا فحيجك از شما نیست مگر آن که وارد آن شود این وعده بر پروردگارت فرمانی حتمی و شدنیست ثم نننج الذين اتقوا نذر الظالمين فيها جثيا کسانی را که تقوا پیشه کردند از آن رهایی می بخشیم و ستمکاران را به زانو در آمده در آن رها می کنیم و اذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين امنوا اي مقاما و احسن و هنگامی که آیات روشن ما برانها تلاوت شود کسانی که کافر شدند به کسانی که ایمان آوردند می گویند کدام یک از دو گروه ما و شما در جایگاه و مقام بهتر و از لحاظ محفل محفلشان نیکوتر است و چه بسیار نژاد ها را پیش از آنان نابود کردیم که آنها از لحاظ ثروت از اینها بهتر بودند و ظاهرشان نیز آراسته تر بود قل مَن کَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرحمن مدد حَتَّى ای ما يوعدون العذاب فسيعلمون من هو شر مكانا جندا پیامبر بگو کسی که در گمراهی پس خداوند رحمان او را به فزونی مهلت دهد تا زمانی که آنچه را به آن وعده داده شده اند یا عذاب و یا قیامت را ببینند آنگاه به زودی خواهند دانست چه کسی جایگاهش بدتر و سپاهش ناتوانتر است. وَيَزِيدُ اللَّهُ الله الذین اهتد وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ و عِندَ الصالحات خیر عند ربک و و کسانی که هدایت یافته اند خداوند بر هدایتشان می افزاید و نیکی های شایسته ماندگار در نزد پروردگارت پاداش بهتر و عاقبت خوب تر دارد اف رايت الذي كفر باياتنا وقال لا اوتينما مالا وولدا آیا ديدي ای کسی که به آیات ما کافر شد و گفت قطعا مال و فرزند فراوانی به من داده خواهد شد اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عهدا آیا بر غیب آگاهی یافته است یا نزد خدای رحمان عهدی گرفته است كلا سنكتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا هرگز چنین نیست ما به زودی آنچه را میگوید خواهیم نوشت و بر عذاب او بسیار میافزاییم و نرثه ما یقول و فردا و آنچه را میگوید از او میگیریم و تنها نزد ما میآید آید و من دون الله آلیهتا لیکونو لهم عزا و آنها به جای خدا معبودانی را برای خود برگزیدند. تا سبب عزتشان باشد. کلا سيكفرون بعبادتهم و يكونون عليهم ضدا چون این نیست بلکه به زودی معبودها عبادت آنان را انکار خواهند کرد و بر ضدشان برخیزند. الم ترى ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أذا ای پیامبر آیا ندیدی که ما شیاطین را بر کافران فرستادیم تا آنها را سخت برانگیزند فلا تعجل عليهم انما نعد لهم عدا پس ای پیامبر درباره آنها شتاب نکن ما با دقت عجل و اعمال آنها را می شماریم یوم نحشر المتقین الی وفدا روزی که پرهیزگاران را به صورت مهمان به سوی خداوند رحمان گرد آوریم و نسوق المجرمین الی جهنم وردا و مجرمان را تشنه کام به سوی جهنم برانیم لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا آنها مالک شفاعت نیستند مگر کسی که نزد خداوند رحمان عهدی گرفته باشد وقال اتخذ الرحمن ولدا و مشکان گفتند خداوند رحمان فرزندی برای خود برگزیده است. لقد جئتم چیزی بسیار زشت آوردید. تكاد السماوات و منه الأرض نزدیک است آسمان ها از این سخن از هم متلاشی گردد. و زمین شکافته شد و کوه ها در هم شکافته فرو ریزند ان از این روی که برای خداوند رحمان فرزندی ادعا کرده اند وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا و هرگز برای خداوند رحمان سزاوار نیست که فرزندی برگزیند این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا هیچ چیز در آسمان ها و زمین نیست مگر اینکه به بندگی سوی خداوند رحمان بیاید لقد احصاهم وعدهم عدهم خداوند همه آنها را سرشماری کرده و به دقت شمارده است و كلهم آتی يوم القیامت و همه آنها روز قیامت تنها نزد او حاضر می شوند ان الذين الصالحات لهم بیگمان کسانی که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند خداوند رحمان برای آنها محبتی در دلها قرار میدهد. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قمن الضالين پس همانا ای پیامبر ما آن به زبان تو آسان نمودین تا پرهیزگاران را با آن بشارت دهی و گروه ستیزگران را با آن هشدار دهی و کم اهلک قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد او تسمع لهم رکزه و چه بسیار نسلها لحاق ک پیش از آنها هلای کردیم آیا کسی از آنها را احساس می کنی یا کمترین صدایی از آنها می بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان ها تا ها ما انزلنا الک القرآن لتشقى ای پیامبر ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که به مشقت افتی إلا لمن مگر آن یادآوری برای کسی است که از خدا میترسد دزلم این قرآن، فرو فرستاده شده از سوی کسی که زمین و آسمان بلند را آفریده است. الرحمن على خداوند رحمان است که بر عرش قرار گرفت. له ما فی السماوات وما ما فی الارض و ما بينهما و ما تحت الثراح. از آن آوست آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین و آنچه میان و آن دو است و آنچه زیر خاک پنهان است. وإن تجاهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى و اگر سخن آشکارا بگویی یا آن را پنهان داری گمان او راز نهان و نهان تر را میداند الله لا اله الا, الا هو له الاسماء الحسنا او الله است که هیچ معبودی جز اونیست نام های نیکو از آن اوست و هل اتاک حدیث موسی ای پیامبر آیا خبر موسی به تو رسیده است اذ رآ نارا فقال لی اهلهم کثو فقال لی اهلهم کثو انا استنارا لعل اتيكم منها بقبس او اجد على النار هنگامیک آتشی را از دور دید پس به خانوادۀ خود گفت لحظه‌ای درنگ کنید همانان من آتشی را دیدم شاید شعله ای از آن برای شما بیاورم یا بر آن آتش راهنمایی راه نمایی موسی پس چون نزد آن آتش آمد ندا داده شد که ای موسی. اینی انا ربک فاخلع نعليک انك بِالْوَادِ المقدس قُوَا همانا من پر گار تو هستم پس کفش هایت را بیرون کن که تو در مقدس توا هستی وَأَنَ اخترتك فاستمع لما مَا و من تو را به پیام بری برگزیدم. پس به آنچه بر تو می میشود گوش فراده إننی أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدنی وأقم الصلاة لذكري. یقینا من الله هستم هیچ معبودی به حق جز من نیست پس مرا پرستش کن. و نماز را برای یاد من بر پادار. این النساعه آتیه اکاد اخفیها لتجزا كل نفس بما تسعى ات قیامت خواهد آمد می وقت آن را پنهان دارم تا هر کس در برابر سعی و اعمالی که میکند جزا داده شود فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردا پس مبادا کسی که به آن ایمان ندارد و از هوس خود پیروی میکند تو را از آن باز دارد که هلاك خواهی شد وما تلك بيمينك يا موسى به ای موسا آن چیست به دست راستد قال هی عصایا اتوكأ علیها واهش بها علی غنمی ولی فیها معارب گفت این عصای من است بر آن تکیه می کنم و با آن برای گوسفندانم برگ درختان فرو میریزم و مرا با آن کارهای دیگری نیز است که برآورده کنم قال القها يا موسى. فرمود ای موسا آن را بیفکن فالقاها فاذا هي حيه تسعى پس موسا آن عصا را آفکند که ناگهان ماری شد که به هر سو دوید قال خذها ولا تخف سنعيدها فرمود آن را بگیر و نترس به زودی آن را به صورت اولش باز میگردانیم. وضمم يدك الى جناحك تخرج بيضا من غير سوء ان ايه اخرى و دستت را در بغل خود كن تا سفید و بی ای بیرون آید این نیز معجزه دیگری است لینور یک من تا آیات و نشانهای بزرگ خود را به تو نشان دهیم اذهب الی فرعون انه طغا اینک به سوی فرعون بروغ بیگمان او سرکشی کرده است قال ربش رحلی صدری موسا گفت پروردگارا سین را برایم بگشا و لی امری و کارم را برایم آسان گردان و احلل من لسانی و گره از زبانم باز کن یفقه قولی تا سخنانم را بفهمند و جعلی من اهلی و برای من یاور و وزیری از خاندانم قرارده هارون اخی برادرم حارون را اشدد به ازری به وسیله او پشت مرا محکم کن و اشرک و فی امری و او را در کار من شریک ساز که اینو سببی حک تا تو را بسیار تصبیح گویم ورا كثيرا و بسیار تو را یاد کنیم این کهکن بنا ب سو تو به حال ما خوب بینایی. قال قد اوتیت سئلك يا موسی فرمود ای موسی هرچه خواستی به تو داده شد ولقد مننا عليك مرة اخرى و به تحقیق ما بار دیگر نیز بر تو منت نهادیم. اذا اوحينا اليك آن هنگام که به ما الهام کردین آن که باید الهام میشد ان قذيف فيه في التابوت فقذيف فيه في اليم، فيلقي اليم بالساحل ياخذه عدو لوعدو وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً ولی ولتصنع علی عینی. که او را در صندوقی بگذار آنگاه آن صندوق را به دریا بینداز تا دریا او را به ساحل افکند و دشمن من و دشمن او او را برگیرد و من محبتی از سوی خود بر تو افکندم و تا در برابر دیدگان من پرور شیابی از تمشی اختک فتقول هل ادلکم على من یکفله فرجعنا الى امی که کی تقر ولا تحزن و نفسا فنجینا من الغم میافتتن نه کفوتونه فل بیست آنگاه که خواهرت میرفت و می گفت آیا کسی به شما نشان دهم که سرپستیاش را به عهده گیرد پس تو را به مادرت باز تا چشمش به دیدار تو روشن شود؟ و اندوه گین نگردد و بعدها تو یک نفر قبطی را کشتی پس ما تو را از اندوه و گرفتاری نجات دادیم و بارها چنان که باید تو را آزمودیم پس از آن سالها در میان مردم مدین ماندی سپس ای موسا بر طبق تقدیر الهی به اینجا آمدی و صنعتک لنفسی و تو را برای خودم خاص ساختم و پرورش دادم اذهب انت واخوك باياتي ولا تنيا في ذكري اینک تو و برادرت با آیات من برو و در یاد من سستی نکنید اذهب الى فرعون انه طغى به سوی فرعون بروید بی او سرکشی کرده است فقولا له لعله او پس به نرمی با او سخن بگویید شاید که او پند گیرد یا از پرورد گارش بترسد قَالَ رَبَّنَا اِنَّنَا نَخَافُ و اَنْ يَفْرُطَ عَلَيْنَا اَوْ اَنْ يَطَغَا موسا و حارون گفتند پروردگارا به راستی ما میترسیم که بر ما پیش دستی نماید یا تغیان کند قَالَ لَا تَخَافَت انني معكم اسمع وارى فرمود نترسيد بيشك من با شما هستم ميشنوم و ميبینم فاتياه فقولا اننا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائيل ولا تعذبهم قد جئنا که من ربک والسلام من اتبع الهدا. پس به نزد او بروید و بگویید ما فرستادگان پروردگارت هستیم بنی اسرائیل را با ما بفرست و آنها را آزار و شکنجه نکن براستی که ما نشانه روشنی از سوی پروردگارت برای تو آورده ایم و سلام بر آن کسی که از هدایت پیروی کند اینا قد اوحی ایلینا انالعذاب علی من کذب و توله همانا به ما بحش شده که محققا عذاب الهی بر کسی است که آیات و معجزات را تکذیب کند و روی بگرداند قال فمر ربكما يا موسى فرعون گفت ای موسی پروردگار شما کیست؟ قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا موسى گفت پروردگار ما کسی است که آفرینش هر چیزی را به او ارزانی داشته. سپس آنها را هدایت کرده است. قال فما بال القرون گفت: پس حال و سرنوشت های گذشته چه می شود؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا ربي گفت علم آن نزد پروردگارم در کتابی است پروردگارم اشتباه میکند و نفراموش می کند الذي جعل لكم الارض مهدًا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل و انزل من السماء ماء فأخرجنا بهی ازواجا من نبات شده همان کسی که زمین را برای شما گهواره و محل آسایش قرار داد و برای شما در آن راه ایجاد نمود و از آسمان آبی فرو فرستاد پس با آن انواع گوناگون گیاه را از زمین بیرون آوردیم كلو وارعوا انعامكم ان فی <تصفح> ذلک لآیات بخورید و نیز چهار پایانتان را بچرانید بیگمان در این امور نشانه هایی برای خردمندان است منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ومنها نخرجكم تارة اخرى ما شما را از آن آفریدیم و در آن باز میگردانیم و بار دیگر شما را از آن بیرون میآوریم. ولقد اریناه آیاتنا كلها فكذب وأبا و بهراستی ما همهٔ آیات خود را به او نشان دادیم پس او همه را تكذیب کرد و سرباز زد قال أجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك یا موسی گفت ای موسی آیا به نزد ما آمده ای که با سحر خود ما را از سرزمین من بیرون کنی؟ فلن اتینک بسحر مثله فجعل بیننا و فجعل بينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى. پس یقینا ما هم سهری مانند آن برای تو می آبریم. پس همکنون در مکانی هموار و مقبول همه موعدی میان ما و خودت قرار بده که نما و نه از آن تخلف نکنین قال موعدكم الناس موسی گفت موعد شما روز عید زینت است و آنکه همه مردم چاشتگاه گرد آورده شوند تولى فرعون فجمع كيده ثم اتا آنگاه فرعون بازگشت پس همه مکر و حیله خود را جمع کرد سپس آمد قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحطكم بعذاب وقد خاب من افترا موسا به آنها گفت بای بر شما بر خدا دروغ نبندید که شما را با عذابی نابود میسازد و یقینا کسی که بر خدا افترا بندد ناکام و ناامید می شود فتنازع امرهم بینهم و اسر نجوان اس آنها در کارشان میان خود اختلاف کردند و رازشان را پنهان داشتند قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهب بطريقكم المفلح گفتند مسلما این دو نفر جادو گرند میخواهند شما را با جادوشان از سرزمینتان بیرون کنند و آین برتر شما را از بین ببرند ثم مأتو صفا و قد افلح حوم من نیستعل پس همه حیل و تدبیر خود را گرد آورید و به کار بندید. سپس در یک صف برای مبارزه بیایید و به راستی امروز کسی از کار خواهد شد که چیره و غالب گردد قالو یا موسى اما و اما ساهران گفتند ای موسی، یا این است که اول تو را بیفکنی یا آن ما کسانی باشیم که اول بیافکنیم. قال بل القو حبالهم وعصيهم عصیهم یخیل من سحرهم انها تسعه موسا گفت بلکه شما بیافکنید. پس ناگهان ریسمان هایشان و عصاهایشان از اثر سهرشان چنان به نظرش رسید که حرکت می کند فا فی نفسی خیفتم پس موسا در دل خود ترسی احساس کرد قلنا لا تخف انك <تصفيق> <تصفيق> گفتیم نترس مسلما تو غالب و برتری و الق ما في يمينك تلقف ما صنع إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى و آنچه در دست راست خود داری تا تمام آنچه را که ساختند به بلعت بیشک آنچه ساخته اند تنها مکر ساهر است و ساهر هر جا رود رستگار نخواهد شد فالقی فا السحرات سجدا قالو آمنا برب هارون و موسی پس موسی اصای خود را افکند ناگهان به مار بزرگی تبدیل شد و همه آنها را که ساخته بودند بلید آنگاه ساهران همگی به سجده افتادند گفتند ما به پروردگار هارون و موسی ایمان آوردیم. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم. إنه لك بيركم الذي علمكم السحر فلا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا في جذوع النخل ولا تعلمن اشد عذابا و ابقا فرعون گفت آیا پیش از که به شما اجازه دهم به او ایمان آورید بی تردید او بزرگ شماست که به شما سهر آموخته است پس یقینا دستانتان و پاهایتان بر خلاف یکدیگر قطع میکنم و شما را بر تنهای نخل بدار می آویزم و بیشک خواهی دانست که عذاب و شکنجه کلام یک از ما سختر است و پایدارتر است قالوا لن نؤثر که على ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فقضی ما انتقام انما تقضی هذه الحیات الدنیا گفتند سوگند به آن که ما را آفریده است هرگز تو را بر این دلایل روشنی که برای ما آمده ترجیح نمیدهیم. پس به هر حکمی که میخواهی خواهی حکم کن تو تنها میتوانی در این زندگی دنیا حکم کنی این امنا بر ربنا لغفر لنا خطايانا وما اكرمتنا عليه من السحر والله خير وابقى همانا ما به پروردگار ایمان آورده ایم. تا گناهان و آنچه را از سهر که ما را به آن وادار کردی برای من ببخشاید و خداوند بهتر و پایدارتر تر است اینه من یأتی ربه مجرمن فا له جهنم لا يموت ولا يحيا. بی گمان کسی که گناهکار به نزد پروردگارش حاضر شود پس آتش جهنم برای اوست در آنجا نمی میرد و نزنده زنده ماند و من یأتهی مؤمنا قد عمل الصالحات فأولا لهم العلا. و کسی که مؤمن نزد او آید در حالی که کارهای شایست انجام داده باشد پس اینان برایشان درجات بلند است جنات عدن تجری من تحت ها الانهار خالدین فی ها و جزاء من تذکه باقهای جاویدان که نهرها زیر درختان آنجاری است همیشه در آن خواهند بود و این است پاداش کسی که خود را از شرک و گناهان پاک نموده است ولقد أَوْحَيْنَا إِلَى موسى أن أسر بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ لا تخاف لَا ولا تخشی و به راستی ما به موسی وحی كردیم كه شبان بندگان مرا از مصر بیرون ببر سپس برای آنها در دریا راهی خوشک بگشا که نه از تعقیب دشمنان خواهی ترسید و نه از غرق شدن در دریا حراسی داری فاتبعهم فرعون بجنوده فَغَشِيَهُمْ من الْيَمِّ مَا غشيهم. پس فرعون با کریانش آنان را دنبال کردند آنگاه دریا چنان که باید آنان را فرو پوشانید و اضل فرعون قومه و هدا و فرعون قوم خود را گمراه نمود و هدایت نکرد یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوكم و جانب الطور الایمن ونزلنا نزلنا و المن و بنی اسرائیل ما شما را از دست دشمنانتان نجات دادیم و در طرف راست کوه تور با شما وعد گذاردیم تا تورات را بر شما نازل کنیم و بر شما من و سلبا نازل کردیم کلو من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیه فیحل عليكم غضبی و یحلل عليه غضبی فقد هوات از پاکیزه ها آنچه به شما روزی داده این بخورید و در آن سرکشی نکنید که خشم من بر شما وارد می شود و کسی که خشم من بر او وارد شود قطعا نابود شده است و اینی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا و همانا من آمان آموزنده برای کسی کتاب کرد و ایمان آورد و کار شایسته انجام داد سپس هدایت یافت. و ما اعجلك عن قومك يا موسى. ای موسا، چه چیز سبب شد که از قوم خود پیشی گیری؟ قال هم اولئی علی اثری و عجلتو ایلیک ربی لی ترضا گفت پروردگارا آنان به دنبال من هستند و من به سوی تو شتاب کردم تا از من خوشنود شوی. قال قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمْ فرمود بی گمان ما قوم تو را بعد از و آزمودیم و سامری آنها را گمراه کرد و رجع موسى الى قومه ربانا اسفنا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 مگر پروردگارتان وعده نیکو به شما نداده بود آیا مدت جدایی من از شما به درازا کشید یا خواستید خشمی از سوی پروردگارتان بر شما نازل شود که وعده مرا خلاف کردید قالو ما اخلفنا موعدک بی ملکنا ولیکن ولكن حُمَّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَنْقَصَ السَّامِرِي گفتند ما به اختیار خود بعد تو را خلاف نکردیم لیکن بارهای سنگینی از زینت و زیورهای قوم فرعون که با خود داشتیم آن را در آتش افکندیم پس بدینسان سان سامری نیز آن داشت افکند فَأَخْرَجَ لَهُمْ عجلا جَسَدًا لَهُ خوار فقالوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِي آنگاه برای آنها مجسمه گوسالی که صدایی همچون صدای, صدای گوسال داشت پدید آورد پس سامری به پیروانش به مردم گفتند این معبود شما و معبود است که آن را فراموش کرده است افلا یرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضررا ولا نفعا آیا نمیبینید که این گو سال هیچ پاسخی به آنها نمیدهد و مالک هیچ سود و زیانی برای آنها نیست و لقد قال لهم هارون من قبل یا قوم انما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فتبعونی أمري و بیشک شک پیش از این به آنها گفته بود ای قوم من یقینا شما به وسیله این گو سال آزمون شده اید و بی گمان پروردگار شما خداوند رحمان است پس از من پیروی نمایید و فرمانم را اطاعت کنید قالوا لن نبرح علیه عاکفین حتی یرجع ایلینا آنها گفتند ما پیوسته پیرامون آن برای پرستش مینشینیم و آن را عبادت می کنیم تا موسی به سوی ما بازگردد قال هارون ما منعك اذ ضلو. چون موسی آمد گفت ای هارون چه چیزی تو را باز داشت هنگامی که آنها را دیدی گمراه شدهاند. الا تتبعني از من پیروی نکردی آیا فرمان مرا عسیان و سرپیچی کردی قال يا ام لا تأخذ بلحيتي ولا برأسی اینی <سؤال> خشیتو ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی هارون گفت ای پسر مادرم نریش مرا بگیر و نموی سرم را همانا من ترسیدم که بگو میان بنی اسرائیل تفرقه انداختی و سخن و سفارش مرا به کار نبستی قال فما خطبك يا سامري موسی رو به سامری کرد و گفت ای سامری این كار تو چیست؟ چرا چنين كردي قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها و نبذتوها و سولت لی نفسی گفت من چیزی را دیدم که آنها ندیدند پس مشتی خاک از رد پای اسب رسول را گرفتم آنگاه آن را بر پی کرف کندم و این چونین هوای نفسم این کار را برایم آراست جلوه داد قال فذهب فَإِنَّ لك في الْحَيَاةِ ان تقول لا مساس وَإِنَّ لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقن موسا گفت پس برو بیشک تو در زندگی دنیا این است که بگویی به من دست نزنید و نزدیک نشوید. و همانا وعده ای از عذاب داری که هرگز تخلف نخواهد شد و اکنون به معبودت بنگر که پیوسته عبادتش می کردی و آن را رها نمی کردی آن را خواهیم سوزاند سپس خاکستر و ذرات آن را در دریا پراکنده میسازیم اینما اله‌کم الله الذی لا اله الا وسع كل <تصفيق> شیء علما. معبود شما تنها الله است که جز او هیچ معبودی نیست و علم او همه چیز را فرا گرفته است كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد آتيناك من لذ الذكر اي اینگونه از خبرهای آنچه گذشته است بر تو بازگو میکنیم و به راستی ما از جانب خود به تو ذکر دادهایم من اعرض عنه فانه وزرا کسی که از قرآن روی گردان شود پس بیگمان او روز قیامت بار سنگینی از گناه بر دوش خواهد کشید <تصالح> قال <قالدين> في وساء لهم يوم القيامه حملا در آن رنج جاودان خواهند ماند و برای آنها روز قیامت بدباری است يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا همان آن روزی که در سور دمیده شود و مجرمان را کبود چشم در آن روز گرد آوریم یتخافتون بینهم الا بالتم الا عشوا. آنها در میان خود آهسته سخن میگویند و به یکدیگر میگویند شما فقط ده روز در دنیا درنگ کردید نحن اعلم بما یقولون ایذ یقول امثلهم طریقتن الا بیثتم الا يوما ما به آنچه میگویند داناترین چون نیکو روشترین آنها بگوید شما تنها یک روز درنگ کردید و یسألونک عن الجبال فقل ینسفها ربی نسفا ای پیامبر از تو درباره کوه میپرسند پس بگو پروردگارم آنها را سخت متلاشی و پراکنده خواهد کرد فیذرها صف پس آنها را زمینی صاف و هموار میگرداند لا ترو فیها عوجا ولا انت در آن هیچ پستی و بلندی را نبینی يومئذ يتبعون الداعي لا و وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا نمسا در آن روز همگی دعوت کننده را پیروی کنند هیچ راه سرپیچی و مخالفت نیست و همه صداها در برابر خداوند رحمان خاشع می پس جز صدای آهسته چیزی نشنبی یوم لا تنفع الشفاعت الا من أذن له الرحمن الا من اذن له الرحمن ورضي له قولا <Maßnahmen> آن روز شفاعت هیچ کسود سود نمی بخشد جز کسی را که خداوند رحمان به او اجازه داده و گفتار او را پسندیده است. یعلم بین ایدیهم <علما> <علم> آنچه را پیش رو دارند و آنچه را پشت سرشان است میدانند و آنها به علم او احاطه ندارند. وعنات الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم ما چهره ها در برابر خداوند زنده پایاند فروتن می شود و آنکه بار ستم بر دوش دارد ناکام و مأیوس می میگردد و مع عمل من, من الصالیحتی و هو مؤمنون فلا قاف غ ولا حبما و کسی که کارهای شایسته انجام دهد در حالی که او مؤمن باشد پس نه عستمی میتررسد و نه از کمکاستی، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ اَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا و اینگونه آن را قرآنی عربی نازل و بعید و هشدارها را در آن گوناگون بیان داشتیم و شاید آنها تقوا پیشه کنند یا برای آنها پندی پدید آورد. فتعال الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحي وقر رب زدني علما پس بلند مرتبه است خداوندی که فرمانروای حق است به تلاوت قرآن شتاب مکن پیش از آنکه وحی آن بر تو تمام شود و بگو پروردگارا به علم من بیفزا و لقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی و لم نجد له عزما. و به راستی پیش از این به آدم سفارش کردیم و عهد بستیم پس او فراموش کرد و برای او عزمی استوار نیافتیم و ایذ قلنا و بیاداور انگاه که به فرشتگان گفتیم برای آدم سجده کنید پس همه سجده کردند جز ابلیس که سرباز زد فقلنا یا آدم هذا عدو لك فلا من الجنة فتشقا. پس گفتیم ای آدم بیگمان این ابلیس دشمن تو و دشمن همسرت است پس مبادا شما را از بهشت بیرون کند که برنج افتی این لك الا تجوع فيها ولا تعرا همانا برای تو این است که در آن گرسنه نمی و نه و انک لا مانی فیها ولا و آنکه تو در آن تشنه شوی و نه می یابی فوسوس ایلیه الشیطان قال یا آدم هل ادلو کعلا شجرت الخلد و ملک لا پس شیطان او را به وسوس انداخت گفت ای آدم آیا می تو را به درخت جاودانگی و فرمان روائی بیزوال راه نمائی کنم؟ فأكلا منها فبدت لهما سوئاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوا آنگاه آدم و حوا از آن درخت خوردند پس عورتشان برایشان آشکار گشت و شروع کردند که از برگ درختان بهشت بر خودشان میچسباندند و آدم پروردگارش را نافرمانی کرد پس گمراه شد ثم اجتباه ربه فتاب عليه سپس پروردگارش او را برگزید پس توبه اش را پذیرفت و او را هدایت کرد قال اهبطا منها جمیعا بعضكم لبعض عدو فإما یأتینكم منی هدى فمن اتبع هدایا فلا یضل ولا یشقی فرمود شما دوتن با ابلیس همگی از آن بهشت فرودایید در حالی که دشمن یکدیگر خواهید بود پس اگر از سوی من هدایتی برای شما بیاید، هر کس از هدایت من پیروی کند، پس نگمراه می شود و رنج افتد. و من اعرض عن ذکری فإن له معیشته ضنكا و نحشره يوم القیامة و کسی که از یاد من روی گردان شود، پس بیگمان زندگانی سخت و تنگی خواهد داشت و روز قیامت او را نابینا برانگیزییم قال رب لما حشرتني اعما وقد پروردگارا چرا مرا نابینا برانگیختی و حال آنکه من در دنیا بینا بودم قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فرمود همان گونه که آیات ما برای تو آمد پس آنها را فراموش کردی و این گونه امروز تو در آتش فراموش خواهی شد وكذلك نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِي ربه رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقَا و اینگونه کسی را که اصراف کند و به آیات پروردگارش ایمان نیاورد جزا میدهیم و یقینا عذاب آخرت شدیدتر و پایدارتر است افلم يهتد لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات لالنها آیا برای هدایت آنها کافی نیست که پیش از این آن بسیار از نسل ها را هلاک کردیم که در مساکن آنها راه میروند بیگمان در این امر نشانه‌هایی برای خردمندان است. سبقت من واجل و اگر فرمانی که پیش از این از پروردگارت مقرر شده مبنی بر تأخیر عذاب و وقت معین نبود مسلما عذاب الهی بر آنها محقق میشد. فَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى پس ای پیامبر بر آنچه میگویان صبر کن و پیش از طلوع آفتاب و قبل از غروب آن به ستایش پروردگارت تسبیح گوی و نیز در ساعاتی از شب و اطراف روز تسبیح گوی باشد که خوشنود شوی ولا لا تمدن عینی که الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا زهرت الحیات الدنیا ری فیه و رزق ربی که و, و هرگز چشمان خود را به سوی آنچه از نعمتها و متاع دنیاوی که گروه های از آنان را از آن بحر من ساخته ایم ندوز اینها زینت ها و شکوفه های زندگی دنیاست تا آنان را در آن بیازماییم اروزی پروردگار تو بهتر و پایدارتر است و امر اهلکت بالصلاه و استبر علیها لا نسالک رزقا نحن نرزقک والعاقبه للتقوا و خانواده ات را به نماز فرمان بده و خود بر انجام آن شکیباب باش ما از تو روزی نمیخواهیم بلکه ما به تو روزی می دهیم و سرانجام نیک برای پرهیزگاران است و قالوا لولا یأتینا بآیت من ربه اولم بینت ما فی الصف و فی الاولا و مشرکان گفتند چرا معجزه ای از جانب پروردگارش برای ما نمی آورد؟ بگو آیا دلایل روشنی که در کتاب های پیشین بوده برای آنها نیامده است؟ و لو انا اهلکناهم بی من قبله لقالوه لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آیَاتِكَ مِن قَبْلِ اَن نَذِلَّ وَنَخْذَا اگر ما آنها را پیش از آمدن او با عذابی هلاک می کردیم آن ان روز قیامت میگفتند پروردگارا چرا پیامبری به سوی ما نفرستادی؟ تا پیش از آن خار بر وصوا شویم از آیات تو پیروی کنین قل كلم متربص فتربص فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى ای پیامبر بگو همه منتظرند شما نیز منتظر باشید پس بهزودی خواهی دانست که چه کسی از ها راه راست و چه کسی هدایت یافتند.